يدرك لم تانس بदुनियाنا ولم تسر خلف طيف السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستنطر الذل بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد درود الله الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو به برنامه امروزی ما خوش آمدید خداوند زلجلال را سپاس که به ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیوی صدای جندالله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم امروز جمعه تاریخ هجه رجب مطابق هشت جون رادیوی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه می دهد. خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید و همچنان امیدواریم که داشته های برنامه امروزی ما مورد پسند شما قرار بگیرد. در برنامه امروزی سلسله اندرس ها مصاحبه صدای جندالله با برادران مجاهد. در بخش نظام اسلام موضوعی را اختیار نمودیم زیر عنوان نظام افتا. وصیت و سفارش حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بفرماندهان که در این اواخیر در شماره چهر یک لشکر خراسان نیز گنجانیده شده است و همین تاور گزارشات داغی افته با جند الله باشید فعاد يهتز في عقفیه مؤتلقا یمید بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه و ينشده فَنَا لَهُ وَحَبَاهُ سلسله اندرس ها شناختن دوست در تنگ دستی و چارگی دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پرایشان خالی و در ماندگی راستی موجب هدایت است راستی موجب رضای خداست کس ندیدم که گم شد از رهی راست رزق اگرچند به گمان رسد شرط عقل است جستن از درها ریاست شایسته بدکاران و ظالمان نیست ریاست به دستی کسانی است که از دستشان دستها بر خداست زبان نشانه شخصیت زبان در دهن خیردمند چیست کلید دری گنج صاحب هنر چو در بسته باشد نداند کسی که جوهر فروش است یا پیل ور. اگر خیر نمی رسانی ازیت مکن کسی که خوی حیوانی دارد تربیت نمی شود به مردم آزار مرسان تا نفرین نشوی شیرینی سخن به تکرار آن نیست مخالفت با حق به نتیجه است الدمع احرار من, من, شون من محترم ان بود اندرزه هاي امروزی که به خدمت شما تقديم گردید خدا كند که مورد پسند شما قرار گرفته باشد من البطوله والامجاد نرويها ترقص على وجنه مصاحبي به بخشی مصاحبه صدای جندالله خوش آمدید در این هفته رادیوی صدای صدای الله مصاحبه ای را با یک برادر مجاهد انجام داده که اینک خلاصه آن به خدمت شما تقدیم می گردد بسم الله الرحمن الرحیم اسم مستعار ما مشهور و مصعب سه که یکی از نامهای های کرام می باشد و باعث آمدن ما در اینجا Ykske yes, Allah, tawarak wa taala, mi thermayyadku? Aqddu luhum mastatatum min kuwa wa min ribat al khale. Turhiboon bihi aqdu Allah wa aqduakum. Yani, shma aqddu tiarnayid, muhayyasa zid tiary bi gird dar kufar far. Mastatatum an chizha iraki dar tuwanu has. یعنی شما به هر نوی که می در مقابل کفار مقابله نمایید، تیاری بگیرین و مجهز باشین و در مقابل کفار استاد شوین او عبارت از قوت است و از ربات خیل است رسول الله صلی اللہ علیه وسلم قوت را این تار تفسیر نموده که الان رمی قوتون آگاه باشید که رمی قوت است یعنی قوت که در آیه مبارک ذکر شده است معنای این رمی است ای حدیث مبارکه را رسول الله صلی الله علیه وسلم سی بار تکرار نمودند و این طور تفسیر نمودند که آگاه باشیم که قوت تیراندازی است یعنی شما تیراندازی را یاد بگیرین در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام در مابین خودشان تعلیم و تیرلنگ می کردند دوانی هم می کردند تران دوزی هم va digar و asbabu هر قسم اسباب و آلات جنگ مقابل کفار ایستادگی بکنیم زیرا که اینها تانگ ها و اما داده شویم که با هر با هر نوعی که می توانیم مقابله نماییم خواه با انفجارات خواه با جنگ رو یک سره به مسلمانان هجوم آوردن و با فلانهای شومشان می که اسلام و مسلمانان را از بین ببرن و با ظاهر پاشی دنبالدار آغاز نمودن ای امت مسلمه ای امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه باشین که امروز یهود و نصارا با دین ما, ما با ناموس ما به وطن ما با تمام صاحات ممالک اسلامی تجاوز کردن این فتوه آمست اصولیین، مفقهین، فقهای های کرام، محدثین و مفسرین همیشان اتفاق کردن و فتوا دادن که یک بلست، زمین از ساحات ممالک اسلامی بزیر کفر بیاید و یک مسلمان در دست کفار اسیر گردد به همه مسلمانان دنیا جهاد فرزعین میگردد امروز وای به حال من و شما که تمام ساحات ممالک اسلامی در دست کفار و در دست امریکا و هم پیمانانشان قرار دارد لیکن، Häijgämme sen Nadarim, matkamme on johtanut meitä tähän paikkaan, jossa meillä on kaksi kylää. Yksi on Dar ja toinen on kylä. Meillä on kaksi kylää. ha on iskynyt ja toinen on kylä. Meillä on kaksi kylää. Yksi on iskynyt ja toinen on kylä. Meillä on لأن الله تعالى يقولون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء أي مسلمانان شما يهود ونصار را دوست نگرين كي بعضهم أولياء و بعضشان دوست هاي بعضشان هست وما يتخذ منكم فإنهو منهم وكسي كيا شما أوران را دوست مبينة ونا را دوست مگرة شما هم از جمله‌ی اونها هستین و در آیه‌ی دیگری میفرماید ولن ترزا عنک الیهود والنساراء حتا تتبع ملتهم یعنی هیچگاه اسماء آرازی نمیباشن یعنی به همراه شما دوستی نمیکنن حتا اینکه به ملت ایشان تابعدار شید حتا اینکه قانون اینها را بپذیرید حتا اینکه فرهنگ پوسیده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 زراعت خود با کار خود مصرف باشد به با کار دنیاوی خود آن وقت الله تبارک و تعالی بر بالای شما زلت را مقرر می سازد و ما باید چاره خلاص شدن این اللت را درک نماییم و یگانا چاره ای که از اللت ما و شما را خلاص می او حکم الله تبارک و تعالی است که جهاد فی سبیل الله میباشد. باشد اظهار سپاس از برادر ما که با اشتراک خود برنامه ما را بهتر ساختند عن في بلم فبلغها فبلغها أمانيها. نظام اسلام شناوندگونی محترم در بخش نظام اسلام خوش آمدید در این هفته موضوعی را انتخاب نمودیم زیر عنوان نظام افتا که اینک چگونگی این نظام را مورد بررسی قرار می دهیم نظام افته. هر فرد مسلمان مکلف است که تمام عمل کردهایش بر وفق احکام اسلام بوده و فیصله شریعت را که در نتیجه افعالش صادر می‌گردد بپذیرد و روابط خود را با دیگران به نحوی مشروع برقرار سازد اگر در این موارد چیزی نمی دانیست و یا در بعضی حالات حکم شار برایش واضی نبود، واجب است که نسبت به آن معرفت کامل پیدا کند تا اعمال و سلوک خود را مطابق حدود تعیین شده در شریعت انجام دهد. یکی از راه‌های کسب معرفت و معلومات دینی این است که علماء با تعلیم و آموزش مردم اقدام نموده و احکام دینی را به مردم برسانند. و یا اینکه مردم با مراجع، با سوال سوالهای خود را با آنها مطرح نموده و از احکام شرعی معلومات حاصل کنند. تعلیم دادن مردم و تبلیغ احکام دینی به آنها از فرازی است که اسلام بدوش اهل علم گذاشته است. آنها شرایط مکلفیت دارند که مردم را در امور دینی تعلیم داده و به دوزی که اسلام آموزشی آن را لازم میداند با آنها آگاهی دهند. فارزیات این امر زمانی قوت میگیرد که جهل در بین مردم افزایش یافته و معالیم نشانه های شریعت کم رنگ شده و بدعت در بین مردم رایج گردد اگر علما در اداء این فریزه کوتاهی کنند گناهکار بوده و با سخت محاسبه مواجه می شوند زیرا هر نوع تقصیر در مسئولیت مرادف با کتمان علمی می باشد که نزی آنها امانت بوده و معمور بنش رو تبلیغ آن می باشند. اما وقتی که علما به تبلیغ دین می پردازند، بر مردم مواجیب است که به سخنان آنها گوش داده از گفته هایشان بیاموزند و با آن عمل نمایند. اگر چینین نکردن گناه آن به دوش خود آنها بوده و در آخرت مورد محاسبه قرار میگیرند. زیرا با تبلیغ علماء و بیان احکام دینی حجت بر ایشان قایم میگردد. اما با وجود تبلیغ احکام دینی از سوی علما باز هم ممکن است که عده‌ای نسبت به احکام دینی جاهل بمانند و یا شاید علما در انجام مسئولیتشان تقصیر نموده و در اثر آن یک تعدادی افراد از علوم دینی محروم مانده و روز تا روز تعداد این گونه افراد افزایش یابد و بالاخره جهل بر جامعه حکم فرما گردد در چنین حالتی بر کسانی که نسبت به احکام شریع بخبر مانده‌اند واجب است که مسائل مهم دین را بیاموزند. قرآن کریم دستور می‌دهد که فسئلوا اهل الذکر ان کنتم تعلمون. اگر مسئله‌ای را نمی‌دانستید از اهل علم سوال کنید. تقصیر علما در تبلیغ و دعوت به سوی دین مسئولیت جاهل را مرفون نمی‌سازد، بلکه او در هر صورتی باید با مراجعه به علما و سوال از آنها علم ضروری برای تعمیل احکام شریع را بده آورد. این سوال کردن و جواب دادن آنها و مواردی که به این سوال و جواب تعلق می گیرد حالت سوال کننده، جواب ارائه شده و موقف عالم هنگام جواب، حکم مسئله مورد سوال، مانند وجوب، اباحت و غیره اموریان که مجموعه آنها در نظام اسلامی به نام نظام افتا یاد می شود معنای لغوی افتا در لغت نامه لسان العرب از این منظور چنین آمده است افتاه فی الامر یعنی موضوع را برایش بیان کرد افتاه فی المساله یعنی جواب سوال ارائه را کرد اسم مصدر آن فتوا است و فتوا اسم مصدر است که در موضوع افتا به کار برده می شود از شرح لغوی کلمه افتا می که استفتا در لغت به منای سوال کردن از حکم شرحی مثلا می باشد شخص سوال کننده را مستفتی و شخص جواب دهنده را مفتی می نامند و جوابی را که می کند فتوا و عمل جواب دادن را افتا می خونند. پس در نظام افتا مستفتی، مفتی، افتا و فتوا ارکان چارگانه این نظام را تشکیل می دیهند افتا در اصطلاح معنای اصطلاحی افتا همان معنای لغوی آن می باشد که متزمینی وجود مفتی، مستفتی افتا و فتوه است ولی با اضافه این قید که مسئله مورد سوال باید از امور شرعه بوده و حکم آن نیست بر اساس مفاهم شرعه ای را اگردد. در نظام افتا که می خواهیم از آن سخن بگوییم مستفتی شخصی است که حکم شرعی مسائل را مورد سوال قرار می دهد و شخصی که جواب می دهد مفتی نامیده می شود و عملی را که انجام می دهند افتا و نسومتنی جوابی او را فتوا می گویند. با توجه بشری فوق بحث کنونی به چار مطلب اساسی که عبارت از مستفتی، مفتی، افتا فتوا تقسیم می گردد که انشالله در برنامه های بعدی میپردازیم. لا تسمعنا قريبا في مرابعه الله أكبر يا ثارات يا سينا لا تسمعنا قريبا همکاری عزیز، در این بخش از پروگیرام، مطلب را از لشکر خراسان دریافت نمودم، زیر عنوان وصیت و سفارش حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه به فرماندهان، که اینک به اجازه شما به خانوش میگیرم. عمر بن خطاب برای سعد بن ابی وقاص و سربازان همراهیوی نویشت، اما بعد، من ترا و سربازانت را در هر حال به تقوای خدا سفارش میکنم، و بدان دستور میده هم چون براستی تقوی خدا بهترین ابزار و اسلحه بر علیه دشمن و نیرومنترین تدبیری جنگی میباشد. و من تو را و سربازانت را امر میکنم به این که از معاصی و گناهان بیشتر پرهیز کنید تا از دشمن چون خطر گناهانی سپاه برای آنها بیشتر از خطر دشمن است. و براستی چیزی که موجب پیروزی مسلمانان میشود آن است که دشمنان و شرنافرمانی خداون را میکنند و اگر گناهان دشمن و نافرمانیشان برای خدا نمی‌بود، بود ما در برابر آنان قوت و نیرویی نداشتیم. چون نه تعداد ما بمانند تعداد آنان است و نه ابزار و سلاح ما چون ابزار و سلاح ایشان است. چنانچه در گناه و نافرمانی الله با آنان مساوی باشیم قوت و قدرت ایشان بیش از ماست. و اگر با فضیلت خیش برایشان ایشان پیروز نشویم با قدرت خیش نمی‌توانیم برایشان ایشان پیروز شویم. باید بدانید که در مسیر از جانب خداوند مأموران بر شما گماشته شده میدانند که شما چی کار می کنید. پس از آنان شرم باد که کار ناشایست بکنید و حالا که در راه خدا می از او نافرمانی مکنید و نگویید که دشمنی ما از ما بدتر است پس بر ما پیروز نمی شود زیرا چی بسا اقوام بوده که بدتر از خودشان بر آنان پیروز و مسلط همانگونه که بنی اسرائیل چون خشم خدا را برنگیختند و مرتکیب گناهان شدند کافران مجوس را بر آنان مسلط گردانید که در سرزمین ایشان به فساد پرداخته کشتار و ایرانی سلب و نه را براه انداختند و این وعده حتمی خداوند است که نتیجه فساد و تباهی نابودی و شکست است از خداوند بخواهد تا بر نفسی خیش پیروز شوید همان گونه که از او خواهد تا بر دشمن پیروز شوید ما همین خواسته را از خداوند برای خود و شما داریم و در مسیر راه با مسلمانان با و مدارا باش و در راه رفتن آنان را به سختی میانداز و خستشان مکن و در طول راه از منازلی که موجب رفاه آنان باشد دریغ و کوتاهی مکن تا اینکه وقت به دشمن رسیدن سفر قوه و نیروی آنها را به تحلیل نبرده باشد چون سپاهیان شما به طرف دشمنی میروند که در دیار خیش مقیم است و از جان و مال خیش حمایت میکند و هر هفته یک شب و روز به افراد خیش استراحت بده و بیگزار اقامت کنند و بیاسایند و جان تازه بگیرند و اسلحه و کالای خیش را به زمین بگذارند و اردوگاهها و منازل سپاهیان خیش را بدور از دهات و مناطق سکونت اهل صلح و اهل ذمه قرار بده و نگذار کسی از سپاهیانت به میان آن روستاها و به داخل آنان میرود مگر هر کسی که به دین و درستی ایمان او اطمینان داشته باشی، و نگذار هیچ بر بردوش اهل سلخ و زمه سنگینی کند، چون آنان با تو عهد و پیمان دارند و محترمان. شما با وفا با آنان با تحمل و شکبایی بر عهد و پیمان مورد آزمایش قرار گرفته اید، تا زمانی که تحمل شما را داشته باشند و بر عهد و پیمان خیش رو که با باشند با آنان خیر و نیکی کنید و با ظلم و ستم بر اهل صلح پیروزی بر اهل جنگ و حرب مجوید و هرگاه به زمین دشمن قدم گذاشتید در میان خود و اشان جاسوسان بگمارید و کار آنان بر شما مخفی نماند و همواره از عربها یا از دیگران کسانی پیش شما باشند که به نصیحت و صداقت آنها اطمینان داشته باشد زیرا دروغگو ندارد. اگرچه بعضی از خبرهایش نیز راست باشد، کسی که خیانت کند و اهل قش رو خیانت باشد، او جاسوس است، بر علیه تو نبسودی تو، وقتی که به سرزمین دشمن نزدیک شدی، طلاعیع و دیدبانان فیروان بگمار، و دستهای به مناطق دشمن گسیل دار که به مناطق دشمن نفوذ کنند، و امدادات دشمن و منافع او را قطع کنند، و دیدبانان و نگهبانان در پی کشف اسرار دشمن باشند، و دیدبانان و نگهبانان در پی کشف اصرار دشمن باشد برای گشتی ها و دیدبانان مردان با تدبیر و دلاور و شجاع از میان یاران خود انتخاب کن و بر این کار بگمار و بهترین و چابکترین اسبان را برایشان انتخاب کن که هرگاه با دشمن برخود کردند دشمن در یابد که با قدرت اندیشه و رأی تو روبروست و از وجود آنان اندیشه تو را بخواند. و کار دسته های نفوذی را یکسانی واگذار که اهل جهاد و شجاعت باشند و دارای سابقه درخشان باشند و کسی را از روی هوا و هوس بدین کار مگمر چون در این صورت اندیشه و رأی کار خش را بیشتر می میکنی بجای اینکه با اهلی ویجه و خاصه خش محابات و پرواه کنی گشتی ها و دسته های نفوزی خش را بجاها و جهات روانه مکن که نگران غلبه دشمن یا تباشدن آنها یا شکست آنها به دست دشمن باشی چون با دشمن روبرو شدی و او را در برابر خود دیدی قسمت های دور سپاه و گشتی ها و دسته های نفوزی را همگی پیرامون خش جمع کن و تمامی تدبیر قوت نیروی فکری و مادی خیش را فراهم آور و خود را آماده کن در آماده باشی کامل باش و تا زمانی که جنگ تو را مجبور نسازد در حمله شتاب مکن تا این که نقاط ضعف دشمن و اسرار او و میدان جنگ او را کشف میکنی و شناسایی کامل از سرزمین دشمن به دست می آوری و به مانند او سرزمین او را میشناسی آنگاه دشمن هر کاری انجام داد تو مقابله به می میکنی سپس موازی به سپاه خیش باش و بر آنان جاسوس بگمار و بیدار و هوشکار باش که مورد خون قرار نگیری و هر اسیلی که با دشمن عهد و پیمان داشته باشد گردنش را بزن تا بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خود را بترسانی یا هر اسیری که عهد و پیمان شکنی کرده باشد گردنش را بزن و کار تو و سربازانت و پیروزیت بر دشمن به دست خداست و استعانت و یاری از آن خداست این وصیت و سفارش حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به تمام مجاهدین بلخصوص به فرماندهان سربکف دین مبین اسلام تقدیم گردید خدا کند که فرماندهان محترم با شنیدن این مطلب به عمل کرده توجه جدی نمایند با احترام واثأر لدرتنا الحبيب وكل من يمضي شهيد اصمد وقات لا تنفل أنت فارسها الوحيد انفح جاعتك الفتية وارجمن بها اليهلون مشحولة بدم الجراح وآهة الشاب الشريم واثأر لدرتنا الحبيب وكل من يمضي شهيد أصمد وقات لا تنفل أنت فارسها الوحيد من يوم يوم كيافة عزما كما عزم الجدود عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد والصدر والعزم القوي وسيلة النصر الأكيد واصدح لحبك للعلاف الكون مصري للنشي من يوم يوم كيافة عزما كما عزم الجدود عزما كعزمه حمزه واسامه وابن الوليد والصبر والعزم القوي افغانستان 12 رجب مطابقه 2 جون قبل از یکنیم و هفته مجاهدین دو زنی بریتانیای و سه مرد افغان را اسیر نموده بودن بعد از گذشت ده روز نیروهای ناتو در یک عملیات شبانه پنج برادر مجاهد را به شهادت رسانده و این اسیران را رها نمودن در میان شهده برادر خورتسین نیما امجد نیز شامل می باشد 16 رجب مطابق 6 جون در نتیجه یک بمباردمان نیروهای خبی ناتو در والسوالی برکی برکی ولایتی لوگر شماری از غیر نظامیان که در یک محفلی عروسی اشتراک کرده بودند کشته و زخمی شدند بر اساس گزارش های یک تصویربرداری آشفتد پرس اجساد 5 زن 7 تپل و 6 مرد در رقب یک موتر قرار داشته و خانواده های آنان جهت اعتراض به سوی کابل روانه بودند با تاریخ مذکور در نتیجه یک درگیری که در بین مجاهدین و نیروهای خبیسی افغان از روز دوشنبه بدین سود در ولسوالیه پساوندی ولایت غور دوام داشت یک پلیس کشته و شش تن دیگرشان جراحت برداشتند و در این رویداد نیز از مجاهدین چهارتن تن به شهادت رسیده اند با تاریخ مذکور در نتیجه یک عملیات استشهادی در بیرونی محوطه پایگاه نظامی ناتو در ولایت کندهار بستودوتن کشته و بیش از 50 دیگر جراحت برداشتند خبر رسانی خبررسانی رویترز گفته است که باری اول یک شخص سوار بر در نزدیکی دروازه این پایگاه عملیات استشهادی نمود و بعد برادر دیگری که بعد از جمع شدن مردم عملیات استشهادی نمود که در نتیجه نظر به گفتهی حکومت مرتد افغانستان دنی رویداد و شمال 8 از محافظین این پایگاه کشته و از 50 تن دیگر جراحت برداشتند اما مجاهدین طیبه و گرفتن این عملیات میگویند که کشته شدهگان این رویداد همه افراد خارجی میباشند با تاریخ مذکور ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید که مسموم ساختنی شاگردان مکاتب دخترانه در این کشور افزایش یافته است. با اساس گزارش‌ها در یک ماهی گذشته بهش از 700 شاگرد دختر در هفت مکتب در ولایت تخار مسموم شده‌اند. فرید زکی معاون والی تخار روز چهارشنبه شنبه در شهر طالقوان در یکی از رسانه های کفر گفت که تاکنون در این رویداد بهش از 20 تن با شاگردان و معلمان و کارمندان مکاتب بازدار شدهاند. با تاریخ مذکور در نتیجه سقوط یک تیاره هیلوکوپتر نیروهای ناتو در شرق افغانستان دو اسکری ناتو کشته شدند هفته رجب مطابق هفته جون شماری از باشندگان شهری چاریکاری مرکزی ولایت پروان میگویند که در نتیجه تیراندازی محافظان والی یک تن از ساکنان این ولایت زخمی شده است نظر به گفته های شماری از باشندگان ناحیه هفت این ولایت والی پروان همراه با محافظینش برای جلوگیری از منزلهای های خودسر و غیر قانونی دیروز در آن محل آمده بودند و محافظین وی و دستور این مرتاد بر بالای افراد این محل تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک تن زخمی شده است با تاریخ مذکور یک مکتب دخترانه شبی ی در ولایت بدخشان از سوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شد میر عبدالرحمن رئیس معارف ولایت بدخشان در یکی از رسانه‌های کفر گفت است که این مکتب دخترانه در جریان شبی ی در ولوسوال بهاره که این ولایت تاریخ شده است به گفته رئیس معارف بدخشان برخی از اشیای مکتب مانند میز و چوکی هریق شده و بخش از این مکتب نیز با شدت تخریب شده است پاکستان سیزده رجب مطابقی سه جون در حملات طیاره های بدون سرنشین در وزیرستان شمالی پانزتن به شهادت رسیدن. نظر به گفته حکومت این حملات به خاطری به شهادت رساندن ابو یحیاء لیبی براه انداخته شده بود. اما مجاهدین در مورد شهادت شیخ ابو یحیاء تبصیره نکردن. هفته رجب مطابق هفته جون مقامات حکومت پاکستانی می گویند که در نتیجه انفجاری بم در نزدیکی یک مکتب در شرکویت ای ایالات بلوچستان کم از کم هشت نفر کشته و بیستانی دیگر جراحت برداشتند. سوریا شانزه رجب مطابق شش جون رئیس جمهور بشار الاسد وزیر سابق زراعت ریاض خجاب را به حیث صدر اعظم تعین کرده است. ریاض حجاب بدون بالای انتخابات پارلمانی ماه گذشته صدر اعظم جدید سوریه در این کشور که درگیر نزاع ها تعیین شده است ریاض حجاب روز چهارشنبه من حیث صدر اعظم سوریه اعلام شده کابینه جدید خود را تشکیل خواهد داد و ای بجای عادل سفر تعیین شده که عادل سفر در اپریل سال گذشته زمان صدر اعظم سوریه تعین شده بود که مردم در جنوب سوریه به قیام علیه رئیس جمهور بشار الاسد پرداختند و بعد اعتراضات جنوب سوریه و دیگر مناطق کشور گسترش یافت و در حال حاضر بر اساس اعلامیه گروهای مدافع حقوق بشر از آغاز اعتراضات در سوریه تاکنون بیش از ده هزار نفر کشته شده‌اند هفته جماعت سانه مطابق هفته جان فعالین مخالف حکومت سوریا میگویند حداقل دقل 86 نفر در شهر هما توسط نیروهای حکومت کشته شدند که بیش از چلتن آنان زنان و کودکانن که در قریه های قبر و مرزف کشته شدند. تلویزیونی دولتی سوریه گفته است که نیروهای حکومتی بعد از آن که مجاهدین را مورد حمله قرار دادن، اجساد را دریافتند. یک کمیته تنظیم کننده محلی گفته است، تنها در قریه قبر هفتاد هشت تن کشته شدند. فعالین می‌گویند که این قریه مورد حمله راکتی نیروهای حکومتی قرار گرفت. و این نفرات توسط ملیشای حکومتی کشته شدند. براساس گزارشه اکثر این قربانیان از نزدیک با فیر رگرولا، و یا اینکه توسط چاقو کشته شدند. روسیه؟ شانزه جماع دیو مطابق شش جون، مجلس ولیسی جرگای پارلمان روسیت لایحه بحث برانگیزی را تصویب کرد که بر اساس جریمه بر کسانی که دست به تظاهرات میزنند به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت و هم لست مجازات برای کسانی که دست به تظاهرات در جاده ها میزنند خواهد یافت. ایراق، جمعه جماعتستانی مطابق هفته جون، سفیر تین شده اداره اوباما برای عراق بریت مکورک به ساناتوران امریکایی گفت اگر تقرار روای به سفیر در عراق از سوی کانگریس تصویف شود، از دستاورت های آسیب پذیر در عراق دفاع خواهد کرد نایجیریا، در ای رجب مطابق سوی یکی می، قبل از چهار ما مجاهدین تنظیم القاعده یک انجینر آلمانی را در نایجریه اسیر گرفته خواهان تبديل با خواهر مجاهده بودند ولیکن الحمدلله این خواهر قبل از سه هفته بدون تبديل از زندان رها شده بود به تاريخ هشت رجب نیروهای کفر به خاطر رهایی آن هجوم بردن در این جنگ مجاهدین اسیر مذکور را به قتل رساندند بعد از این عملیات مجاهدین گروه القاعده در نایجریه و مجاهدین بوکو ارتباطشان را با هم قوی و همکاری یک دیگر شدند یازده رجب مطابق اول جون مجاهدین بکو در ناجیریا بر بالای عبادت خانه نسارا حجوم نموده آنجا دوازده آنان را به قتل رسانده اند. چهارده رجب مطابق چهار جون در نتیجه سقوط یک تیاره مسافر بری 153 نفر کشته شدند. گفته می شود که این تیاره بر بالای منازیل مسکونی سقوط نموده ولیکن از تعداد کشته شدگان در داخل منازل معلومات در دست نیست. فرانسه دوازده رجب مطابق دوی جون تقریبا دوازده شخصی مسلمان در فرانسه سه یهودی را با چوب و عصا مورد حجوم قرار دادن. بعد از وقوع این حادثه وزیر داخله منویل ویلز گفت ما این کشترها را قبول نداریم زیرا حامیان همه دین آزاد و لیکن ما میگوییم این خبیص چرا حجاب را من نمود. دنمارک دوازده رجب مطابق دوی جون چند ماه برادرانی که خواهانی انجام عملیات بر دفتری تصنیق کاریکاتور بودن، دستگیر گردیده و حبس محکوم شدن. بعد از توهین بر رسول معظم اسلام این هفتمین بار است که دفتری توهین کنندگان در دانمار مورد حمله قرار میگیرد. بلژیک، دوازده رجعه مطابق دوی جون، چند ماه در بلژیک حجاب شرعه ایمان گردید، بعد از واسی این قانون یک دختر با حجاب شرعی وارد شهر شد که پلیس آن را گرفتار نمود بعد از وقوع این حادثه دو سن نفر از مسلمانان مظاهره نموده مراکز کفر زیر حملات سنگ قرار دادند و در آنجا 11 نفر از مسلمین اسیر شده در عصر همان روز رها گردیدند آمریکا یازده رجب مطابق 1 جون مدت 6 سال می شود که در آمریکا یک جماعت شیطانی به نام مسلم ایجاد گردیده که امام اشان دی عبدالله میباشد این گروه از قوملوت می باشند که در مسجد امام و معزینشان زن می باشد در همین حال اوباما از این اسلام اظهاری رضایت نموده است مصر دوازده رجب مطابق دوی جون بعد سقوط رژیم حسن مبارک خودی مبارک به حبس ابدی محکوم شد علت این حکم این است که وی مسئول در قتل مزایر کنندگان شناخته شده و به گرفتن رشوت زیاد و فروخت نفت و آن کشور به اسرائیل در بدل پول اندک محکوم می باشد. کینیا. یازده رجب مطابقی یکی جون در نتیجه یک انفجار در شهر نایروبی مرکز کینیا سی نفر مجروح شدند مسئولیت این حمله را تا حال کسی به آهده نگرفته است ولی کفار میگویند که عاملین این حمله مجاهدین سومالی ها می باشند زیرا عساکر کینیا در سومال مستقرند و بالاخره یک خبر جدید از افغانستان مرتض حامید گرزی رئیس جمهور جمهوری افغانستان در اجلاس دو روزه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در پکن شرکت کرد در این کنفرانس کشورهای چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کرده است اما سران کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان هم دعوت شده‌اند در این کنفرانس موضوع امنیتی آسیای میانه و وضعیت در افغانستان در سری اجندای اجلاس قرار داشت مرتض کرزی قبل از آغاز کنفرانس روز دوشنبه در سخنرانی که در پوانتونی اموری بین المللی چن در پکن داشت گفت دیدگاه ما این است که چین میتواند نقش بسیار مهم در نزدیک کردن افغانستان و پاکستان به زمینهای همکاری برای مبارزه شنماندگان عزیزی رادیوی صدای جندالله، این بود داشته برنامه امروزی که به خدمت شما تقدیم نمودیم، تا برنامه دیگر خداوند منان یارو یاورتان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <متحدث> جريح <تجنجري> قد سبي اتقى اليهود عرضنا دسوا كرمه مسجدي وتعرضوا لنبينا جمع النصارى الحقدين اطلب مسمعي جونسر الشاش <صكت> ابي زمجر واطلب مسمعي جونسر الشاش ابي زمجر واطلب مسمعي جونسر الشاش ابي زمجر وأطرب مسمعي يا الشاش الأديب فكانوا لا تفرح فقات جئنا بجيش احمدي يهون للموت كما تهفو شرب الخمرة فتكان لا تفرح فقط جئنا بجيش أحمدي يكون للموت كما تهفو شرب الخمرة آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي أمجل وأطلب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأطلب مسمعي زرصاصر سروش شش ابي زمجر